بخش پنجم اسرار چهار شب پیاپی همسایه ها به دیوار کوبیدند حالا دیگه هر وقت دوستان تلکوسکی او را میدیدند بلا فاصله او را دست میانداختند و وقتی همکارانش در اداره هم از موضوع با خبر شدند آنها هم در مسخره کردن او به خاطر رفتار ناشیانه و دست با چش به بقیه پیوستند اسکوپ مرتب به او میگفت نباید اجازه بدی اینطور برات شاخ و شانه بکشند. جوابشون جوابشونو ندید دیگه هیچ وقت دست از سرت بر حرفم رو باور کن فقط کافی حضورشونو ندیده بگیری خودشون خیلی زود از اذیت کردنت خسته میشن. اما با وجود تمام تلاش هایش تررکوسکی نمی توانست حضورشان را ندیده بگیرد. در هیچ یک از اوقاتی که در آپارتمان بود نمی توانست از این فک در طبقه بالا در طبقه پایین یا در واحد بغلی کسانی مراقب او هستند خلاصی یابد اما حتی اگر موفق هم میشد فراموششان کند آنها به گونهای حضورشان را به او یادآور میشدند البته نه اینکه سر و صدای اضافی از خودشان در بیاورند اینطور نبود بلكه بی پایانی بود از صداهای آرام و خفیف از قبیل جیرجیرهای جیرهای نامحسوس، های گرفته و قشقش خشک لولای دری که به آرامی باز و بسته میشد. گاهی یک نفر در میزد. زد. در را باز می کرد اما کسی را پشت در نمیدید. به پاگرد می رفت، از روی نردهها خم میشد و به پایین نگاه می کرد. آن وقت ممکن بود یک نظر متوجه بسته شدن دری در طبقه پایین یا صدای قدمهای لرزانی بشود که از طبقه بالا به پایین میآدند اما هیچ وقت چیزی نبود که مستقیما به او مربوط شود. شبها گاهی از صدای خروف ناگهان از خواب می پرید. اما کس دیگری در تخت خوابش نبود. صدا از جای دیگری میآد یکی از همسایه ها بود که خر میکرد. ترولکفکی ساعتها حرکت و ساکت در تاریکی روی تخت دراز می کشید. و به صدای خروب و فهم ناشناسش گوش می داد. سعی می در ذهنش مجسم کند چون این شخصی چگونه آدمی باید باشد. یک مرد یا زن با دهانی باز و ملافهی که آنقدر بالا کشیده شده تا نیمه پایینی صورتش را بپوشاند، یا پایین آمده و شانه ها و سینه را بدون پوشش گذاشته و احتمالا یک دستش هم از یک طرف تخت آویزان است. بالاخره به خواب می رفت. اما چند دقیقه بعد از صدای زنگ ساعت دوباره از خواب می پرید. آن وقت جای دیگر دستی با فشار دادن دکمه کوچک بار دیگر سکوت را برقرار می کرد. دست ترکوفسکی هم در حرکتی مشابه به طور خودکار به دنبال دکمه کوچک خودش می گشت. اما چیزی پیدا نمی کرد. اسکوب گفت حالا می بینی کم کم عادت می کنی خونه قبریتم هم همسایه داشتی اما از اینجور نگرانیها ها نداشتی. سایمون اضافه کرد. اگه کاری نکنی فکر میکنند برنده شدند و دیگه هیچ وقت از بر نمی دارن. سوزان برای من تعریف کرد که وقتی تازه به آپارتمان جدیدشون اسباب کشی کرده بودند، از همون اول همسایه ها سعی کرده بودند تا ازش به خاطر بچه زهره چشم بگیرند. برای همین، شوهرش یک ست کامل جاز میخره و هر وقت کسی کوچکترین اشاره‌ای اشارهای درباره بچه به سوزان میکرده ست جازشو بیرون می آورده و ساعتها به نواختن می پرداخته. حالا دیگه هیچکس مزاحمشون نمیشه. تکووسکی با تمام وجود شجاعت شوهر سوزان را تحسیم می کرد. او بدون شک مردی قوی هیکل و درشت اندام بود. در واقع برای چنین رفتاری باید همینطور میبود. مگر اینکه بر عکس کوچک و نحیف بود. اما مصمم به این که اجازه ندهد به خاطر قد و قامتش او را تحت فشار قرار دهند. اما در این صورت چیزی که باعث تعجب ترکوفسکی میشد این بود که چرا همسایهها دست جمعی بر سر او نریخته بودند. البته اگر قوی هیکل و درشت اندام بود، شاید جرأتش را پیدا کردند. اما اگر کوچک و نحیف بود چی؟ شاید به این نتیجه رسیده بودند که ارزشش را ندارد. که در واقع هم نداشت. اما آیا همه این اینطور فکر می کردند؟ در مورد خودش چه می‌شد اگر او هم رفتاری مشابه رفتار شوهر سوزان را در پیش می گرفت؟ ناگهان به یاد یکی از مفاد اجار نامه افتاد که او را صریحاً از نواختن هر گونه آلات موسیقی در خانه من کرده بود. اگر در اداره چیزی از دستش به زمین میافتاد مثل قلم نگهدار یا چیزی شبیه به آن، همکارانش با ماش به دیوار میکوبیدند و فریاد میزدند ما از دست تو آسایش نداریم؟ یا تا کی میخواهی به مزاحمت ادامه بدی؟ بعد هم از دیدن قیافه وحشت زده ترکوفسکی مثل بچه ها از خند ریسه میرفتند. تکووفسکی میدانست که این تنها یک شوخی است و واقعیت ندارد. اما با اینکه سعی میکرد خون را حفظ کند قلبش به تپش میافتد و به دندههایش میکوبید. لبخند میزد تا وانمود کند شوخی سرگرم کننده ای بوده. اما درونش احساس تیره بختی میکرد. یک شب اسکوب را به آپارتمانش دعوت کرد. اسکوب گفت خودت میبینی. من خودم برای این چیزا نگران نمی کنم. به محض اینکه وارد خانه شدند، اسکوب زبط سوت را روشن کرد و ولوم صدایش را هم تا حد اکثر باز کرد. تلکوزکی در وحشتی کشنده به نعره سازهای بادی و قررش سازهای ای گوش داد. احساس کسی را داشت که درست وسط یک گروه ارکست نشسته است و لابد بقیه همین احساس را داشتند به خصوص همسایه ها از خجالت سرخ شده بود تنها چیزی که در این لحظه آرزو می کرد این بود که صدای زفر را کم کند و آرامش و سکوت را دوباره به اتاق برگرداند اسکوب با بدجنسی خندید بعد پرسید چی شده؟ نکنه برخ تو را گرفته؟ بیخیالش. حالا میبینی؟ من میدونم دارم چیکار میکنم. تررکوسکی فقط برای اینکه روی صندلی باقی بماند مجبور بود ذره ذره از مائیراداش را به گیرد چه رفتار عجیبی ها چه فکری می‌کردند از دید او این موسیقی چیزی جز یک آراغ پرسر و صدا و ناشایست نبود نمایشی شریرانه و پرغیل و قال از ارگانیسمی که باید ساکت میبود. بالاخره نتوانست بیش از این تحمل کند و با کم روی گفت صداشو کم کن اسکوب با صدایی که بلندتر از صدای زبت بود فریاد زد نه بزار همینطور بمونه اصلا تو چرا باید نگران باشی؟ بهت که گفتم خودم میدونم چی میکنم بعد با خنده اضافه کرد حالا دیگه همه بهش عادت کردند تررکوفسکی دستهایش را روی گوشهایش گذاشت و گفت اما این حتی برای خود ما هم خیلی زیاده بهش عادت نداری ها؟ پس چرا حالا که میتونی ازش لذت نمیبری؟ تو خونه خودت که نمیتونی از این کار بکنی؟ در همین لحظه چند ضربه به در نباخته شد ترکوفسکی از جا پرید و با دل و پسی پرسید همسایه ها؟ امیدوارم اینطور باشه حالا میبینی چجوری باید این مسائل و حل و فصل کرد؟ و البته کسی که پشته در ایستاده بود یکی از همسایه ها بود ببخشید که مزاحمتون میشم موسی و مثل که مهمان دارید میخواستم ببینم آیا امکانش هست صدای ضبط رو کمی پایین بیارید همسر من بیماره چهره اسکوب از خشم کبود شد فریاد زد که چی؟ همسرتون بیماره که باشه انتظار دارید من چیکار کنم؟ به خاطر همسر شما زندگی متحتیل کنم؟ اگه واقعا مریضه پس چرا توی بیمارستان بستریش نمی‌کنید؟ بهتر گریه زاریاتونو برای یک نفر دیگه نگه دارید. این چیزا تأثیری در من نداره. من هر وقت بخوام ضبط رو روشن می‌کنم و صداشو هم هر قد که بخوام بلند می‌کنم. گوشای من کمی سنگینن اما دوست ندارم به این خاطر از موهبت گوش دادن به موسیقی محروم بمونم. بعد همسایهش روی پایَت به عقب هول داد و در را محکم به رویش بست. رو به در فریاد زد سعی نکنید هیچ کلکی سوار کنید رئیس پلیس از دوستان منه بعد هم با لبخند گشاده‌ای که بر لب داشت به طرف ترکوفسکی برگشت و گفت حالا دیدی اینجوری باید از شرشون خلاص شد ترکوفسکی چیزی نگفت توان حرف زدن نداشت احساس میکرد چیزی در گلویش گیر کرده و تلاش برای عدای حتی یک کلمه ممکن است به خفه شدنش نمی نمیتوانست به همین سادگی شاهد تغییر و سرشکستگی یک انسان باشد. چهره همسایه که از فریاد خشمین نسکوب عقب می نشست از ذهنش پاک نمی شد. امق بحت و سردرگومیش در چشمهایش منعکس بود. وقتی به آپارتمان خودش باز می گشت چه چیزی میتوانست به همسرش بگوید؟ آیا میخواست وانمود کند کسی که فریاد میزده او بوده یا به شکست خفت بارش اعتراف میکرد؟ ترکوفسکی عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفته بود. زیر لب گفت، اما اگه همسرش واقعا مریض باشه؟ خب که چی؟ به درک که مریضه؟ مگه وقتی من مریزم ازش میخوام ساکت باشه؟ مطمئن باشه اون دیگه هیچ وقت پاشو اینجا نمیذاره. خوشبختانه هنگام ترک آنجا در راهپله با هیچ کس مواجه نشد. با خودش عهد کرد که دیگر هیچ وقت برای دیدن اسکوب به آپارتمانش نرود. اسکوب به سایمون گفت باید قیافه ترکوفسکی رو میدیدی. وقتی داشتم جواب این یارو رو می دنبال یه جایی می که قایم بشه. <تصفيق> آنها با صدای بلند خندیدند. ترکوفسکی از هر دوی آنها متنفر بود. سایمون گفت: شاد این بار حق اون باشه. یه نگاهی به این بکن. روزنامه ای را از جیب کتش درآورد و باز کرد. این برای تیتر صفحه اول چطوره؟ در حالی که مست یعقل در ساعت سه نیمه شب با صدای بلند آهنگ تووسکارا می‌خواند، با شلی که به قصر رسید. جالبه نه؟ ترکوفسکی و اسکوپ سعی کردند تا روزنامه را از دست او بقابند اما سایمون دست هر آنها را پس زد. من قرار نزنید. خودم براتون میخونم. شب گذشته برای ساکنان ساختمانی در خیابان گامبتا شماری هشت واقع در لیون شب پرمشغله ای بود و برای یکی از آنها عملا به قیمت جانش تمام شد. موسی لوئیس 47 ساله، مجرد و فروشنده یک شرکت تولیدی، به همراه چند تن از دوستانش موفقیت آمیز بودن مذاکراتی را که جهت عقد قرارداد مهم تجاری انجام داده بود، جشن گرفته بود و اینطور که پیداست، در نوشیدن مشروب تا حدی افراد کرده بود. ظاهرا وقتی ساعت 3 به خانه برمیگردد، از آنجایی که به صدایش بسیار افتخار میکرده تصمیم میگیرد برای تفریح و سرگرمی همسایه ها چند قطعه اپرا اجرا کند. بعد از چند قطعه بلند از فاوس تازه خواندن توزکار را شروع کرده بود که یکی از همسایه ها موسیو جولیان پنجاه ساله متعهل و فروشنده شراب سریحا از وی می تا خواندن آواز را متوقف کند. موسیو لوئیس می کند و برای تأکید بر عزم راسخش به ادامه کنسرت تک نفرش به پاگرد می رود تا از آنجا به خواندن ادامه دهد. موسی جولیانو به آپارتمانش برمیگردد و بعد از چند لحظه با یک هفتی اتوماتیک بیرون میآید و تمام گلوله هایش را در بدن مرد میخاره خالی میکند. موسی لویس را بلافاصله فاصله به بیمارستان منتقل می اما به فاصله کوتاهی بعد از رسیدن به بیمارستان میمیرد. قاتل بازداشت شده است در مدتی که سایمون مشغول خواندن بود و اسکوپ با صدای بلند میخندید، تررکس احساس می کرد شدیدی در گلویش پیچیده است. مجبور شد دندانهایش را محکم به هم فشار دهد تا گریه گریهاش را بگیرد. به دلایل غیرقابل درکی قبلا هم شده بود و البته مثل همیشه بیش از همه خودش در عذاب بود. میل مقاومت ناپذیری برای گریه کردن او را فرا گرفت. و با اینکه نشانی از سرماخوردگی نداشت مجبور شد چند بار پشت سر هم بینیاش را بالا بکشد. سر راهش به خانه یک نسخه از روزنامه را خرید تا سر فرصت مقاله را دوباره بخواند. در طول این دوره امکان نداشت به سایمان یا اسکاپ بر بخورد و مجبور نباشد به سیل بی‌پایانی از نصایح آنها درباره نحوه برخورد با ها گوش بدهد. آنها تجربیاتشان را با ترکوفسکی در میان میگذاشتند و متقابلاً از او میخواستند تا اخبار آخرین پیشرفتهایش را درباره وضعیت خودش و ها برایشان تشریح کند. آنها می‌موردند برای اینکه دوباره به خانه ترکوفسکی دعوت شوند، به این امید که با به راه انداختن یک رسوایی جبران نپذیر کل ماجرا را به پایانی خشونت بار بکشانند و وقتی ترکوفسکی هر گونه امکان دعوت از آنها را با قاطعیت رد کرد آنها هم تهدید کردن چه او بخواهد و چه نخواهد سرزده به ملاقاتش بیایند سایمون گفت الان میبینی وقتی ساعت چهار صبح با مش به در خونت کوبیدیم و با صدای بلند اسمت را صدا زدیم میفهمی که شوخی نمیکردیم. اضافه کرد. شاید هم زنگ آپارتمان طبقه رو بزنیم و بگیم با تو کار داریم. شاید هم چندصد نفری رو برای پارتی به خونه ای تو دعوت کنیم و به همه بگیم که این قرار بوده یک سورپرایز باشه. خنده‌ی ترکوسکی از همیشه رقتانگیزتر بود. احتمالا اسکوپوس سایمون این حرفها را برای سر به سر گذاشتن به او میزدند. اما به هر حال نمی توانست مطمئن باشد. احساس می کرد حالا دیگر صرف دیدن او بدترین وجوه شخصیت آنها را بیدار می‌کند. کافی بود بوی سید به مشامشان بخورد تا به راحتی به سیادی وحشی تبدیل شوند. با خودش فکر کرد به هر قدر بیشتر منو ببینند. اشتیاقشون برای آزار اذیت من بیشتر میشه. ترکوفسکی کاملا از پوچی و مسک بودن رفتارش آگاه بود. اما کاری هم از دستش بر نمی آمد. این پوچی بخش جدای ناپذیر و احتمالاً بنیادی ترین ویژگی شخصیت او بود. آن شب در خانه مقاله را که در روزنامه چاپ شده بود دوباره خواند بعد به خودش گفت: «من حتی اگه مستم باشم با اونقدر بی ملاحظه نیستم که ساعت سه صبح توی راهپله آواز بخونم سعی در ذهنش مجسم کند که با وجود تمام ملاحظات چه میشد اگر اما حتی فکرشم برای او زیاد بود و او را به خنده انداخت همانطور که روی تخت دراز کشیده بود تمام سعیش را کرد تا صدای خندهاش را زیر پتو خفه کند. از آن پس تا تو میتوانست از دوستانش اجتناب کرد. دلیلی نداشت با حضورش آنها را به انجام عمل نسنجیدهای تحریک کند. شاید اگر او را کمتر میدیدند دست از سرش بر می داشتند. تقریبا دیگر هیچ وقت از خانه بیرون نمیرفت. خودش عادت داد به اینکه از گذراندن بعد از ظهرهایش در خانه و به دور از هر گونه سر و صدا و شلوغی لذت ببرد. این بهترین راه برای اثبات حسن نیتش به همسایه ها بود. با خودش فکر کرد: اگه بعدها به دلیل اینجا شلوغ بشه تمام شبهایی رو که اینجا سکوت مض برقرار بوده به یاد میارن و منو به خاطر یک شب شلوقی میبخشند. به مرور و طی بعد از که تنها در خانه به سر میبرد متوجه شد که ساختمان صحنه وقوع یک سری وقایه عجیب و غریب است. ساعتهای بسیاری را صرف مطالعه و بررسی این وقایه کرد. بیهوده تلاش کرد تا سر از کارشان در بیاورد. بارها به خودش گفت که احتمالاً بیش از اندازه به مسائل پیش با افتاده که معنای چندانی ندارند اهمیت می‌دهد. اما بعد وقتی نوبت پایین بردن زباله شد زباله ها معمولا روزهای متمادی در آپارتمان ترکافسکی جمع می شدند و از آنجایی که تقریبا همیشه در رستوران غذا می خورد، سطل زبالش عمدتا شامل کاغذ های باطله و مقدار خیلی کمی مواد فاسد شدنی بود. با این حال، گاهی بریده نانی که با خودش از رستوران به خانه آورده بود یا بقایای یک تکه پنیر که به ظرف مقوایش چسبیده بود داخل سطل زبالش دیده می شد. یک روز، وقتی دیگر نتوانست بوی زباله‌ها را تحمل کند، تمام مواد زائد را یک جا جمع کرد، همه را داخل سطل زباله آبی رنگش ریخت و با خودش به زبال دان اصلی برد که در حیات بود. سطل زباله لب به لب پر بود، به طوری که وقتی تلکفسی از پلها پایین می رفت، بریده های کاغذ، پارچه، پوست پرتقال و انواع خوردریز دیگر پشت سرش به زمین می ریخت. ترکوفسکی آنقدر حواسش به پایین بردن سطل زباله بود که از خیر جمع کردنشان گذشت با خودش گفت موقع برگشتن جمعشون میکنم. اما وقتی برگشت هیچ اثری از ها در راه پله نبود یک نفر تمامشان را جمع کرده بود اما کی چه کسی مراقب بوده و منتظر مانده تا با بیرون رفتن ترکوفسکی تمام چیزهایی را که او پشت سرش به زمین ریخته بود جمع کند آیا ممکن بود کار یکی از همسایه‌ها باشد اما مگر این برای آنها یک فرصت استثنایی نبود تا به بهانه آن او را مورد سرزنش قرار داده و با دست دادن به شدیدترین اقدامات تلافی تهدید کنند مطمئنا همسایه‌ها نمی گذاشتند چنین فرصت بادآورده ای برای نمایش قدرت و نفوذشان بر او به سادگی از دست برود خیر پای کس دیگری در میان بود یا چیز دیگری اول فکر کرد شاید کار موشها باشد موشهایی هایی از که به دنبال قضا از فاضلاب یا سرداب به بیرون میخزند صدای خشخشی که گاه از راه پله میشنید این فرضیه را تقویت میکرد اما اگر کار موشها بود پس چرا به زباردان اصلی که در حیات بود حمله نمیکردند و به همین ترتیب اصلا چرا تابعا حتی یک موش هم ندیده بود اما ناپدید شدن زباله‌ها او را تا حدی ترساند. طاریک پایین بردن زباله‌ها را حتی بیش از قبل به تعویق انداخت و وقتی بالاخره مجبور شد زباله‌ها را پایین ببرد، آنقدر عصبی و دستپاچه بود که روی هر پله چیزی را به زمین انداخت. اما وقتی برگشت کوچک‌ترین نشانی از رد پایی که پشت سرش به جا گذاشته بود دیده نمیشد. با این حال این تنها علت بیزاری ترکافسکی برای بیرون بردن زباله‌ها نبود. این کار از یک جهت دیگر هم احساس شرم عمیقی را در او برمی‌انگیخت. هر بار که در پوش یکی از زبال دانها را برمی‌داشت، پیش از آنکه محتویات سطل خودش را داخل آنها خالی کند، همیشه از مشاهده نظم و ترتیب داخل آنها متهیّر می‌شد. و این در حالی بود که زباله‌های خودش محوت‌ترین توده زباله در تمام ساختمان بودند. هیچ شباهتی بین زباله‌های کننده و نفرت‌انگیز او و زباله های مرتب و روزانه سایر مستاجران وجود نداشت زباله های آنها ظاهری استوار و قابل احترام داشتند و مال او اینطور نبود ترکوفسکی مطمئن بود فردا صبح موقعی خالی کردن زباله دانها سرایدار بلا فاصله متوجه میشد که کدام قسمت از محتویات متعلق به اوست حتی می حالت حالت انزجارایش مزاز را در صورت سرایدار ببیند سرایدار ترکوفسکی را در وضعیت تحقیرآمیزی مجسم می‌کرد و پرهای بینیش که گویی بوی بدن ترکوفسکی را از درون زباله‌های استشمام کرده اند از فرط انزجار چین برمی‌داشتند. گاهی برای دشوار کردن کار سرایدار تا آنجا پیش می‌رفت که به داخل دان خم خمیشد و زباله‌های خودش را با زباله‌های دیگران قاطی می‌کرد. اما حتی در همان حال هم به خوبی می‌دانست که این حق محکوم به شکست است. بدون شک برای سرایدار فهمیدن اینکه در میان ساکنان ساختمان چه کسی ممکن است دلیلی برای دست زدن به چنین این کار ای داشته باشد، کار چندان سختی نبود. علاوه بر معمای ناپدید شدن زباله ها، مسئله دیگری هم بود که ترکوفسکی از آن سردر نمی آورد. موضوع به توالت ها مربوط می شد. از پنجری آتاقش، همانطور که سرایدار روز اول گفته بود، ترکوفسکی میتوانست شاهد تمام وقایعی باشد که در اتاقک آن سوی حیات جریان داشت. ابتدا با تمام توانش در برابر وسوسه نگاه کردن مقاومت کرده بود، اما صرف مهیا بودن پست دیدبانی بالاخره مقاومتش را در هم شکسته بود. از آن به بعد، ساعت‌های طولانی با چراغ‌های خاموش در مقابل پنجره نشستن و به دیدبانی منظره مقابل پرداختن بخشی از عادت روزانه شد. طوری که به تدریج به تماشاگر پراپا غرص رژهٔ مداوم همسایگانش بدل شد آنها زن و مرد به آنجا میآمدند شلوارشان را پایین میکشیدند یا دامنهایشان را بالا میزدند به روال عادی روی کاسه توالد مینشستند آن وقت بعد از اجرای حرکات لازم و ضروری بهداشتی دکمه های زیپ لباسشان را میبستند و زنجیر سیفون را میکشیدند ترلکوفسکی دورتر از آنی بود که صدای هجوم آب را بشنود تمام اینها البته طبیعی بود. آنچه غیر طبیعی بود رفتار عجیب و بعضی از آنهایی بود که به این اتاقک آمدند. آنها نه روی کاسه توالت می نشستند و نه تا آنجا که می توانست ببیند به لباسشان دست میزدند. در واقع هیچ کاری نمیکردند. گاهی پیش میآمد که ترکوفسکی تا چند دقیقه آنها را به دقت زیر نظر می گرفت. اما هیچ وقت نتوانست کوچکترین حرکتی را ببیند که از آنها سر میزند. این موضوع هم مزهک بود هم نگران کننده. حتی دیدن آنها در حال انجام بعضی اعمال زشت و ناپسند هم میتوانست تا حدی مایه آسودگی خاطر باشد. اما نه، مطلقا هیچ چیز نبود. آنها برای مدت زمانی که هر بار تغییر میکرد، کاملاً بی‌حرکت ایستاده میماندند و بعد آنچنان که گویی از یک علامت ناپیدا تبعیت میکنند. سیفون را میکشیدند و آنجا را ترک می کردند. زنها هم به اندازه مردها به آنجا می آمدند. اما ترکوفسکی هیچ وقت نتوانست چهره را شناسایی کند. برای دست زدن به چون رفتار غریبی چه دلایلی ممکن بود داشته باشند؟ نیاز به خلوت؟ فحشا آیا به فرقه ناشناختهی تعلق داشتند و انجام این اعمال بخشی از مراسم آینی عجیب و غریبشان بود؟ چطور می توانست بفهمد. یک دوربین دست دوم مخصوص اوپرا خرید بهتر ببیند اما این هم کمکی نکرد آنهایی که رفتارشان تا این حد موجب کنشکاوی او شده بود واقعا هیچ کاری نمی کردند. و چهره هم همچنان برای او ناشناخته ماند عجیبترین که آنها هیچ وقت تکرار نمی شدند و او هرگز هیچیک از آنها را برای بار دوم آنجا ندید یک بار وقتی یکی از آنها سرگرم اعمال غیرقابل درکش بود، ترکوفسکی تصمیم گرفت یک بار برای همیشه خیالش را آسوده کند و به سرعت به سمت توالت دوید. اما دیر رسید و هیچ کس آنجا نبود. هوا را بو کرد، اما هیچ بوی احساس نمیشد. کاسه توالت هم کاملا خشک بود. بعد از آن چند بار سعی کرد، تا یکی از این ملاقات کنندگان اسرارآمیز را قافل گیر کند. اما همیشه وقتی به آنجا می رسید که دیگر دیر شده بود. یک شب به نظر می که بالاخره موفق شده است. در توالت باز نمی شد و از داخل توسط یک چفت کوچک فلسی که زامن حفظ خلوت شخص استفاده کننده بود، بسته نگه داشته شده بود. ترکوفسکی این بار مسمم بود تا وقتی کسی را که توالت را اشخال کرده شناسایی نکرد آنجا را ترک نکند. صبورانه منتظر ماند اما این انتظار مدت زیادی طول نکشید موسیوزی در حالی که با بی اعتنائی دکمه های شروارش را میبست از توالت بیرون آمد ترکوفسکی لبخند دوستانهی بوزد اما موسیوزی کاملا او را ندیده گرفت بعد همچون مردی که دلیلی برای شرمنده بودن از اعمالش ندارد با سری برافراشته از پله ها پایین رفت موسیوزی اینجا چه میکرد؟ او بدون یک توالت در آپارتمان خودش داشت. پس چرا از آن استفاده نمی کرد؟ ترکوفسکی دست از تلاش برای حل این ها برداشت. اما به زیر نظر گرفتن امسایها و حتی گمان درباره اعمالشان ادامه داد. بیان که هرگز به نتیجه رضایت بخشی برده.